بسم الله الرحمن الرحیم به و یاری الله متعال اصلی ترین بحث های کتاب تموم شدند مرفوعات تموم شدند علامت های عرب تموم شدند مرفوعات بعدش تموم شدند منصوبات تموم شدند در درس قبلی رسیدین به مجرورات مجرورات ساده ترین بحث هستند از این میان چرا؟ منصوبات بسیار زیاد بودند یعنی ما نقش های زیادی رو داشتیم که منصوب میشنن مفعولات بودن و حال و تمیز و آخر. اما مجرورات فقط دو تا هستند اونی که با حرف جر مجرور میشه و اونی که با اضافه مجرور میشه در درس اولش مجرور به وسیله حرف جر رو میخونیم باب یخفا الاسم اسم اما به حرف مشترک مشترک اسم مجرور میشه یا با حرفی مشترک و هو منظور از مشترک چیست؟ یعنی بعضی از حرف های هم سر اسم ظاهر میان هم بر روی زمیر میاند منظورش مشترک یعنی مشترک بین زمیرها و های ظاهر و هنات اوهونه من و اله و عن و علا و فی واللام والباء للقسم و غیره بای قسم و غيره. اما یعنی جزیزین حروفی که نام برد بعض یارو در شرح خواهیم گفت انشاء الله او مختص به ظاهری یا حروفی که مختص اسم ظاهر هستند روی زمیرها ها نمیاند و, و اونا چه هستند ربه این البته فقط بر ها نکره ها میاد اما خودش در شهر گفته است ربه رجل صالحین، رجل نکره هست موض و منز این دوتا برای زمان فقط میاند مثالی که خود نویسنده آورده است ما رأی تو یومین ندیدم او را از از دو روز میشه ما رأیته منذ یوم الجمعه از روز جمعه میشه که او را پس منذ و منذ منذ و بر زمان اسم های زمانیان والکافو و حتی و وول قسمی تاه باع قسم بلهی هم بر اسم ها میان جز مشترک ها بود جز حروف مشترک بود اگر هم بر اسم ظاهر می اومد هم بر زمیرها ها. اما وول قسمی تا و تاای قسم فقط بر سر اسم های ظاهر میاد پس این بود بحث گفتیم که، کلمات با دو چیز مجرور میشن یا با حروف جر یا اینکه مضافون الیه واقع شد حروف جر رو اینجا نام بردیم ولی تمام حروف جر اینا نیستند خودش میگه در صفحه بعدی میگه حروف جر 20 تا حرف هستند من هفتار تا رو نه آوردم اونا عبارتا از خلا عدا حاشا لعل متا که ولولا چرا اینا رو ناوردم در متن به خاطر اینکه ستای اولی یعنی خلا، عدا و حاشا در بحث استثناء استثناء به وسیله غیر به غیر الله بحثشون اومد و توضیح دادیم بحثشون رد شد چون اونجا خوندیم اینجا دیگه تکرار نکردیم ابن هشام میفرمایند فس خلا و عدا و حاشا جو حروف جره هستند ولی چون تفصیلاتی توش هست در بحث استثناخوندیم خب چرا لعله لعل لعل لعل رو آوردم به خاطر که لعله فقط اقیلی ها اقیل به وسیلش مجرور نکنند بقیه عرب ها نه لعل الله فضال این هم شاهدش هست علینا بشین ان امکم شریم شریست به شکل مده ولی در واقع زم هست اتفاقا فوحش هم هست شریم بشین ان امکم شریم شریم شرما فحشی هست که به زنان داده میشه خب بگذاریم از معناش لعل فضا لکن اینجا الله مجرور شده با چی مجرور شده لفظش به وسیله لعله ولی تمام عرب ها رو حرف جر نمیدوند بس بخاطرین میگه در ماتم نو آوردم و متاه متاه هم فقط هذیل حرف جرش میدونن شاعر ها شیری سروده است شربنا بماء البحر ثم ترفعت مت لججن خضر لهن نعيش اونجا در ترکیب اولی لعل الله تفضلكم علينا بشئ انهمكم شریمو ترکیب شونا گفتیم محی الدین عبد الحمید شیخ محی الدین عبد الحمید میگه لعله حرف ترجحه هست این برای امید بکار میره و جر هست شبیه به زائد هست الله مبتدا هست مرفوع با بازنبه مقدره از اون جایی که الله لعله رو حرف جر حساب کرده هن عقیلی ها لفظشو مجرور کردن لذا اعراب مبتداش میشه محلی حضا لکم، فعل هست، مبلی بر فتحه، هو مستطر به الله بر گردد، فائلش هست، کم، مفعول بیه است کاف، مبنی بر زمه هست، محلن، منصوب هست، مفعول بیه هست، نیم هم که نشانه جمع مزکر، دلالت بر جمع مذکر می کند، ایجا هم متا لوججر، لوجج به اصیله متا مجرورش کرده اند حوزیلی ها که را میگه ناوردم که میگه مجرور نمی کند مگر مای استفهامیه را که فقط بر مای استفامیه میاد که ما إني برأيي شيء، كي مه برأيي شيء، لو لا فقد زميل رو مزروم يكوني لولاك لايا لو لاك لو لاهو، وينهم نادر حسد، شعر قفتاس، أومت بعينيها من الهودجي، لولاك لاك في ذا في ذل عام لم أح با چشمانش از داخل کجابه اشاره کرد که اگر تو همراه نمی بودی در این سال من به حج نمی اومدم این معلیش هست شاهد در اینش بید لولاکه هست که کاف مجرور هست یعنی دو در واقع دو محل داره یک محلن مجبور یکی این که مبتدا هست و محلن مرفوع هست قبلا در بحث مبتدا خوندیم لولا که لولا خبرش وجوبن میشه حسف هست مانند لولا انتوم که مثال زدیم در بحث مبتدا و خبر یکی از جاهایی که خبر وجوبن حسف میشد خبری بود که مفتداش بعد بود این بود از بحث حروف جر بعدش گفته بود که تا تای قسم فقط بر لفظ جلاله الله وارد میشود مانند تلاهی و گاهی موقع به کلمه رب رو مجرور میکند زمانی که مضافه به کعبه باشد ماننده تا رب دلکعبتی لأفعلن کذا تر رحمانی لأفعلن کذا ولی این خیلی این دوتا کم کاربرد هستند پس در مجرورات ما داریم که کلمات به دو علت مجرور میشن یا با حرف جر که بحث حرف جر رو توضیح دادیم یا با اضافه که اضافه درس بعدی هست